در قرآن و هم در روایات هم همین معنای اغلایش رو گرفتن که خلق به معنای عادت هست. هر چیزی که انسان هر صفتی رو که به عادت رسونده باشه میگن خلق طرف این گونه است مثلا وقتی یه کسی جو میگیردش توی مراسمی این جاییست مثلا جلسه نشستن یه دفعه من ست تا دیگ قضا میدم برای شب شهادت حضرت زهراس همون علیه ها خب بچهش میده و این کار انجام میشه، اما یه باره جب گرفتدش این رو نمیگن خلقش خلق ای هست یا یه بار مثلا دنگش گرفته یه فقیلی رو یه بی رو دستگیری کنه سامن. اما بعضی‌ها رو میبینید خلقشون اینجوریه چه کسی بداند چه نداند کار خیلی رو انجام میده دستگیری هم رو دنبال میکنه این عادتش شده این رو بهش میگن خلقش کریمه اخلاقا کریمانه عمل میکنه خلق به معنی عادتهاست وقتی جم بسته میشه جم سپات، عادتی دست به دست هم میده میشه اخلاق اخلاق پس مجموعه عادت هایی هستش که انسان ها پیدا میکنن حالی یا اخلاق نعوذ بالله بد یا اخلاق خوب